سوره قدر هم از سوره های مکی هست و 25مین سوره هست که بر آن حضرت صلی الله علیه و وسلم نازل شد در سوره علق ما خواندیم اقرا قرآن بخوان در سوره قدر بیان عظمت قرآن این قرآنی که میگیم اقرا این قرآن خیلی عظمت داره در افضل ترین شب در شبی که فضیلت اون شب از هزار شب بالاتر است در چنین شبی نازل شد پس این قرآن را بخان و با خوب توجه کن انا انزلناه في ليلة القدر همانا ما نازل کردیم، این قرآن را در شب قدر در شبی که قدر هست دارای عزت هست، خیلی عزت و منزلت داره پیش خدای عزوجل وما ادراك ما, ما ليله این استفام را میگن استفام تشویقی استفام تشویقی گای شما در رابطه با موضوعی میخواید با دوستتون صحبت کنید میگه میدونی چی شده این استفام یعنی عشق او را علاقه او را تحریک میکنی که این حرف منو گوش کن تشویقش میکنی لذا این از اون نوع استفهام است و ما ادرا کمال ليله القدر میدونی ليله القدر چیه خب خود به خود عشق پیدا میشه و شوق پیدا میشه که ليله القدر چیه الله میفرمايت ليله القدر خیر من 1000 شهر شب قدر بهتر است از هزار ماه از هزار ماه معنیش چیه از هزار ماه میگویند که از هزار ماهی که در اون هزار ماه عبادت بکنی من الف شهر پایینش بنویسید همرا با عبادت یعنی هزار ماه که در اون هزار ماه شما در اون هزار ماه عبادت کنید اما در اون هزار ماه لیلت القدری نباشد عبادت این شب قدر از هزار ماه بدون شب قدر افضل ترست علامہ ابن جرير می فرمات واشبه الاقوال في ذلك بظاهر التنزيل بهترين قول همون قولي ہے اس کے معلوم میشه کہ في ليلة القدر خير من عمل في أم من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر عمل قدر عبادت در شب قدر بهتر هست از هزار ماهی که اون هزار ما هم تو نه عبادت هست اما در اون هزار ماه شب قدری نیست لذا شب قدر از اون هزار ماه افضل است جایگاه خاصی دارد لذا این فضیلت اول بود ليله القدر خیر من 1000 شهر فضیلت دوم تنزل الملائکه و فيها فیها اذن ربهم من كل امر فرود می در اون شب همه ملائکه و جبرائیل امین در اون شب بی اذن فروردگار همه اینها فرود می آید خدا دستور میده که بریم به زمین همه فرشتگان میان من کل امر یعنی على کل امر بر هر امری که خداوند از و فیصل فیصله فرموده در طول یک سال همه فرشتگان اون امور را با خودشون میآورند ببین در این امور امور خیر هست شر هست رزق هست عطاهای دیگه هست و محرومیت هاست هر چی که در سال قرار فیصله بشه برای انسان ها و برای اهل زمین اون شب فرشتگان با خودشون می همراه می آورند و در زمین میگذارند و در انتظار اون تاریخ و ساعت میمانند. مانند اللهم قرطبی نوشته که معنای این که فرشتگان می آورند هر امری را این است که بکل امر قدره الله تعالی و قضاه فی تلک سنه الى قابل هر چیزی که خدا مقدر کرده در آن سال تا سال آینده در اون شب فرشتگان با خودشون حمل میکنن میآورند. خب چرا فرشتگان چونکه معمورین انجام وظایف، معمورین اجرا دستورات پروردگر فرشتگان هستند. مثلا روحی یکی را قبض میکن به یکی دیگه روح میدن تازه زنده میشه، یکی را مریض میکنه یکی را شفا میده همه اینها این امور را، خدای تعالی انجام میده ولی معمورین فرشته هستند به این خاطر فرشتگان حامل این مسائل هستند سلام این فضیلت سووم هست یعنی اون شب سراپا سلامتی هست و اون شب از هر از کنم که آفت و از هر مصیبت سلامتی است هی آن شب حتی مطلع الفجر یعنی چه یعنی لیلت القدر سلامت و خیر كلها لا شر فيها تا طلوع فجر تمام اون شب سلامتی و خیر هست هر کسی که در اون شب از اون خیر و از اون سلامتی بیدار باشد و بتلبد و بخواهد الله عزوجل بهش عطا می کند یعنی اون شبی هست که گویا خدای تعالی عطاها و نواهای خاصی برای بندگان توسط فرشتگان میفرستند. بنده باشد که در اون شب طلب بکنند در اون شب بخواهد به همین خاطر از میگند که هر دعایی که انسان میکند در اون شب اگر مصادف و برابر بشه با شب قدر هر دعایی که باشد انسان داشته باشد اون دعا قبول میشه. ببینید اما این که حتما چون انشاءالله لیلت القدر را در پیش داریم حتما لیلت القدر علامتی داشته باشه مثلا میگویند که در اون شب نور ماه یک مقدار متغیر میشه یا روز بعدش نور خورشید یک مقدار کمرنگتر میشه یا در اون شب حتما باران ببارد این شرایط لازم نیست اون که در حدیث آمده در زمان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم که شب قدر بود و صحابی میگوید که اون شب ما وقتی که داشتیم در مسجد سجده می کردیم باران میآمد و از سقف مسجد آب می چکید و صحن مسجد گلولای شده بود و ما در گلها سجده می کردیم یه قضیه اتفاقی است یعنی همیشه لازم نیسته که هر وقتی که شب قدر شد ما همین حالت را داشته باشیم یا شب قدر شد ما یک نوری را مشاهده بکنیم یک علامتی را ببینیم نه هر کسی الله تعالی شب قدر را مخفی گذاشته و در این مخفی گذاشتنش همه حکمتی هست اگر شب قدر شبش مشخص بشه این ما را تمبل میکنه مثلا همه بدونیم که شب بیست و هست انسان هیچ نمیکنه همون شب میگه من میرم عبادت میکنم و بعضی همین طور گول خوردم بعضی از جوانها در سال گذشته که از من پرسید گفت که خب عبادت در اون شب از هزار ما یعنی هشتاد و سال افضل من اگر اون شب نماز بخونم خب تمام نمازهایی که من قضا کردم آیا اونا خود به خود جبران میشند؟ خب دیگه به اندازه هزار ما خدا ثواب میده لذا هرچی که نماز قضا کردی همه جبران شده کفتم نه این بحث فضائل هست نماز فرض بگردنی تس اونها قضا بیار الان اگر این شب مشخص بشه قطعا انسان ها چی میشن تنبل میشن و انسان ها در اونها سستی میاد لذا این که حکمت این که اون شب مشخص نیست اینه که انسان همیشه تحری داشته باشه همیشه دنبال کند و این شب هم عبادت کند اون شب هم عبادت کند گرچه اشاراتی آمده که بیشتر در اشره اخیر هست در شب های طاق هست ولی بسیاری معتقدند که امکان داره در کل رمضان باشه بعضی ها معتقدند که شب قدر امکان داره که چرخشی باشه یعنی یک سال در این شب یک سال در اون شب مثلا یک سال در 23 ام یک سال دیگه در 25م خیلی از علما بر این عقیده و امام ابو رحمه الله می فرماید بیشتر در ماه رمضانه ولی این احتمال هست که در شب دیگر از شب های سال باشه غیر رمضان باشه منش اینه که شما در طول شب های سال تحری داشته باشه پس شما وقتی که همیشه تعجج همیشه شبها بیدار باشی، نصف شب شما قطعا لیلت القدر را یافتید، لیلت القدر از فضائل شما بحرمند شدی پس بین خاطر هست که الله تعالی مجهولش گذاشته، حکمت اینه، و ویلا مثل مسیحیان گول نخوریم که میگویند هرچی میکنی انجام بده فقط روز ولادت ایسا یک حضور در کلیسا داشته باش کافیه برای تو، نه در اسلام، اینه که ما همیشه باید طاعت و عبادت بکنیم فضائلی خداوند عزوجل انعایت فرموده اما معنای این فضائلی نیست که انسان تنبل بشه و کسی که این فضائل را حاصل کرد دیگه دست از عمل بکشه